روز پانزدهام ماه اوت هوا صاف. به علت خستگی دیروز به خوابی امیق فرو رفتم صبح زود چشم گشودم وقتی میخواستم به غذاخوری شرکت بروم بیقرار بودم مطابق معمول آب خوردم تا مئدم آرام گیرد هنوز وقت داشتم پس روی پله چوبی نشستم صاحبخانه بازنشستم آمد تا بپرسد این برنامه رادیویی بسیار مهم چی هست؟ چیزی به من داد که در برگ روزنامه پیچیده بود گفت قحوه برزیل است با جناق صاحبخانه حدود بیست سال پیش برای امرار معاش به برزیل رفته و چند سال قبل این قفه ها را فرستاده بود صاحبخانه نحوه مصرف آنها را نمیدانست پس به همان شکل در قفسه دردار نگهشان داشته بود من هم اولین بار بود که دانی قهوه می دیدم و نحوه جوشاندن و استفاده از آن را نمیدانستم بنابراین چیزی را گفتم که زمانی از رئیس شنیده بودم. این قهوه موکا یا شاید قهوه عربی باشد. ظاهراً این اواخر در برزیل بذر قهوه مکا و قهوه عربی بسیار کاشته می شود. حضور صاحبخانه به این خاطر نبود که فکر می کرد من از جزئیات جنگ اطلاع دارم. بلکه برنامه رادیویی فوق‌العاده توجهش را جلب کرده وکنون فقط میخواست با کسی حرف بزند من هم حرف‌های بی ربطی زدم با توجه به حرف‌های صاحبخانه حتی حالا هم ماهی‌های رودخانه تنما در هیروشیما می‌میرند اگر ماهی‌هایی را که با شکمی لاغر به پشت شناور شدهاند با دست بگیری فرزهایشان می‌ریزد و هایشان کنده می‌شود بیشتر کپورهای چشمی باغ آسانو در لحظه بمباران هوایی تلف شدند و فرس های کپورهای باقیمانده هم ریخت. بین کسانی که صدمه ندیدند اما در آوار سوخت سرگردان شدند، کسانی بودند که بر پوستشان لکههایی ظاهر شد، موی سرشان ریخت و دندانهایشان لق شد. اینکه من هم دچار این وضع بشوم یا نه را نمی‌دانم، اما در حال حاضر وقتی موهایم را می‌کشم کنده نمی‌شوند. بر پوستم لکه ظاهر نشده و در دندانهایم هم موردی غیر طبیعی دیده نشده است. وقتی دو سال از بمباران گذشت و زمانی که گمان می‌کردم سالم هستم، دو تا از دندانهایم لق شدند. طوری که خودم راحت توانستم آنها را بکشم. بعدش چهار تا از دندانهایم لق شدند. وقتی با انگشت آنها را گرفتم و کشیدم بی هیچ دردی کنده شدند. حالا دندان های بالایم مصنوعی هستند. وقتی کار می کنم و خسته می بر پوست سرم حباب ریزی ظاهر می شود. تمام دندان های آقای آتسویاشی که با هم پرورش ماهی را شروع کردیم، سال بعد از بمباران بدون درد و در فاصله دو ماه افتادند. لثه های آقای آتسویاشی به اندازه باریک است که اصلاً معلوم نیست لسه دارد یا نه. برای همین دندان پزشک، دندان های مصنوعیش را تا حد ممکن بزرگ ساخت تا کار دهان راحت باشد. به خاطر همین دندان مصنوعی لب بالایی او منحرف شده و داخل دهانش دیده می شود. بنابراین آقای سویاشی برای پوشاندن لب بالایی خود سبیل گذاشت. سبیل های کلفت و محکمی هستند. با اینکه مردم روستا این مسئله را می دانند، اما بعضی وقتها به او می گویند، سبیل به او نمی آید. برای آقای یادسویاشی سبیل به هیچ وجه نشانه خودپسندی نیست. باید در اینجا گفت که آقای یادسویاشی بسیار هم فروتن هستند. یاد داشته اضافه شده. بعد از رفتن صاحبخانه به شرکت رفتم. در غذاخوری همراه بقیه صبحانه را صرف و شروع به آماده کردن برگه های لازم کردم. برگه هایی بودند که به دستور رئیس کارخانه باید به رئیس ایستگاه کوی داده می شدند. در آنها باید از مقدار زغالسنگ لازم کارخانه برای یک هفته میزان تولید منسوجات کارخانه آخرین مذاکراتی که با شعبه تأمین لباس داشتیم و وضعیت خرابی شرکت زغال سنگ به تفصیل می نوشتم پس فکر و دقت زیادی می تلبید. اگر می نوشتم افسر مسئول قسمت زغال سنگ در شعبه تأمین لباس وظیفه نشناس هست مشکلاتی پیش می آم اگر هم می نوشتم همکاری می کند، ممکن بود درخواست من پذیرفته نشود. پس خیلی تلاش کردم تا به شکلی درست قضیه را مطرح کنم. در شروع بندها جملات معترضه گذاشتم و آن وضعیت فوقلاده و استراری را به صورت در حال حاضر مجموع زغال سنگ ما به اندازه یک قطر خونه است نوشتم. وقتی نوشتن برگه ها را تمام و شروع به بازخانی آنها کردم، صدای دستگاه های کارخانه ناگهان قطع شد. پنج دقیقه مانده به ساعت دوازده بود. زمان پخش برنامه رادیویی فوقالعاده فرا رسیده بود. برگه‌ها را در کشوی میز گذاشتم. به راهرو رفتم. از پله ها پایین آمدم و سری از در همیشگی به حیات پشتی رسیدم. رادیو در غذا خوری بود و حالا قرار بود واقعی مهم با کلمات بیان شود. درست عکس اینکه چیزی ترسناک ببینی. ظاهرا همه با عجله از راه رو به سمت نهار میرفتند. می رفتند. صدای پاها به شکل هم همه محوی به گوش می رسید. حیات پشتی ساکت و آرام از سه طرف با ساختمان ساختمانهای کارخانه محصور بود. طرف دیگر آن تا پای ای با انبوه درختان بلوت ادامه می یافت. از این جنگل کانال آبی به عرض دو متر به حیات می رسید. و از میان ساختمان دفتر اداری و ساختمان کار کارکنان همراه باد خونکی میگذشت بر سطح زمین مرتوب از این کانال اینجا و آنجا خه رشد کرده بودند. سمت دیگر کانال انبوه گیاهانی آبی بودند که شکوف های کوچک سرخ پریده رنگی داشتند. این طرف و آن طرف دکودامی هم رویده بود. یک نفر هم برای سر زدن به حیات پشتی از دفتر بیرون نیامد فکر کردم به غذاخوری بروم بعد فکر کردم نروم به اتاق کارمندان سرزدم زدم یک نفر هم نبود از بیرون به آشپزخانه نگاه کردم آب کتری بزرگ روی آتش در حال جوشیدن بود و در آن کناری گذاشته شده بود ظاهرا کتری برای گرم کردن ناهار همراه کارمندان بود همه برای گوش کردن به رادیو رفته بودند همه چیز به حال خود رها شده بود برنامه رادیو آغاز شده بود. آنچه در حیات پشتی شنیده میشد، صدای آهسته بریده ای بود. به جای این که سعی کنم معنای کلمات را بفهمم، در امتداد کانال میرفتم و می آمدم. اندکی ایستادم دو طرف این کانال دومتری سنگچین خیلی محکمی بود و کف کانال هم سنگ فرش شده بود. جریان آب کم عمق چیز خاصی نداشت. فقط آبی زلال بود که میگذشت و تراوت ایجاد می‌کرد. اینجا چه جریان زلالی است؟ متوجه شدم درون جریان آب بچه مارماهی سفی صفی تشکیل داده اند و با سرزندگی در جهت مخالف جریان آب شنا می کنند. بیشمار از بچه مارماهی های کوچک بودند. نگاه کردم. واقعا بی نظیر بودند. نسبت به بچه مارماهیی به نام مسکو کچکتر بودند، نازادان مارماهی به درازای نه تا دوازده سانتی متر که در زادگاه هم به آنها پیریکو یا تاتانباری می گویند. بله، بالا بروید، بالا بروید، بوی است پشت سر و از پیه هم به شکلی بی انتها بالا می رفتند. این پیریکوها احتمالاً از راه دور یعنی پایین رودخانه های هیروشیما بالا آمدند. معمولا بچه مارماهی ها ماه مهی از دریا به رودخانه بالا می آیند و در فاصله دو کیلومتری از مصب رودخانه ساکن می شوند. این وقت بدن آنها هنوز مانند برگ درخت بید صاف و نیمه شفاف است. ماهیگیران بنادر هیروشیما به آن مارماهی شیراس میگویند. اینجاست که آنها شکل مارماهی به خود می گیرند و اندازی آنها با لچداجو بالغ برابر می شود. اما در مقایسه با مارماهی بالغ بسیار چالاک هستند. ظاهرا از روز ششم ماه اوت که هیروشیما بمباران شد، آنها به این بالا آمدند. لب کانال زانو زدم و با نگاه هم به مقایسه آنها پرداختم. فقط خاکستری پرید رنگ یا خاکستری تیره بودند و زخمی هم میانشان وجود نداشت. شاید بشود اینجا ماهی گرفت. چه تومهی دوست دارند؟ از آنجا فاصله گرفتم و سمت در ورودی برگشتم. یکی از کارکنان از در خارج شد و سراسیمه از کنارم گذشت. صدا زدم هی! Hey, چه شده؟ برگشت. فقط به من خیره شد و بدو به سمت آشپزخانه رفت. از شکل محکم گرفتن کلاه کارش با دست و دویدن تلخش چیزی نامعمول احساس کردم. وقتی در راهرو قدم زنان به سمت قزاخوری میرفتم، کارکنان با چهره‌ای گرفته که تا آن لحظه یک بار هم ندیده بودم یکی بعد از دیگری از کنارم گذاشتند. بینشان مردی است، زنی هم با کلاه کار صورتش را پوشانده بود میان چندین زن که به خوابگاه برمیگشتند یکی دستش را بر شانه ی دیگری گذاشت که گریه میکرد بعد دلداریش داد گریه نکن اینجوری دیگر بمباران هوایی وجود ندارد عشق به چشمانم دوید وقتی داشتم برای مخفی کردن عشق هایم در لگن دستشویی ورودی غذاخوری دستهایم را می شستم آشپز زن میان سال که تازه کار تقسیم غذا را تمام کرده بود برای خوشامدگویی نزدیک نزدیکم آمد خیلی معدبانه تعظیم کرد و گفتآقا چیزز اوم واقعا این بار چه شده؟ حتی پیرزنی مثل من هم حسرت می‌خورد. واقعا حسرت می خورم. چه شده است؟ زن آشپز گریه کرد باز همه هایم جاری شد. با این همه اگر صادق باشم نمیتوانم بگویم های بعد از ظهر روز پانزدهم ماه اوت حقم بود. در کودکی مرد قانون شکن نیمه دیوانی قد بلندی به اسم یویچی در همسایگی من بسیار اذیتم کرد. در آن موقعیت خودم را نگه داشتم گریه نکردم و به خانه فرار کردم. در خانه مادرم را به ستوه آوردم تا سرانجام ستان هایش را از قفصی سینه پهنش بیرون انداخت به محض دیدن پستانها گریم گرفت حتی حالا هم خوب به یاد دارم که مزه آن شیر شور بود اشک لحظه رهایی بود فکر کردم آیا اشک امروز هم مانند اشک آن روز نیست در نهار خوری رئیس کارخانه و کارکنان دور میز بودند اما در مجموع 20 نفر هم نمی در واقع آنها هم از افراد مسن و با تجربه تر بودند. همه چون جیزو سنگی خاموش نشسته بودند و یک نفر هم غذا نمی خورد. آشپز زن با حولهی که داشت انگار سرزنش شده باشد در جایگاه تقسیم غذا زیر نورن آویزان ایستاده بود. آقای رئیس، بالاخره برگه ها رو مرتب کردم. این را گفتم و مقابل رئیس نشستم. ظاهرا تسلیم بود. شاید اینطور است آقای رئیس خیلی راحت گفت والا حضرت امپراتور برنامه رادیویی داشتند اما امواج رادیویی بد بود کارکنان تنظیمش کردند اما هرچه دستکاری کردند بدتر شد به وضوح نتوانستیم بشنویم اما ظاهراً تسلیم شدیم کاسه برنج سبوستار روی میز خشک شده و مگس بر آن نشسته بود بر صدفهای شیافوکی جوشنده شده در شویو هم مگس نشسته بود. یک نفر هم نبود که بخواهد آنها را بپرانند. خیلی خوب، سر باشید و غذا بخورید. رئیس با صدای بلند گفت. خانم آشپز، حالو را بیاور. به اندازه‌ای بیاور که به هر نفر سه تا برسد. از فردا شاید این کارخانه تحت مدیریت ارتش دشمن قرار گیرد. اگر این تور شود دیگر حق حرف زدن نخواهم داشت همه خاموش بودند وقتی رئیس هاشی را برداشت من هم هاشی را برداشتم به ازای هر نفر سه عدد آلو خشک تقسیم شد کاری را که رئیس انجام میداد داد تقلید می کردم. سه آلو خشک را روی برنج گذاشتم. چای را تکان دادم با هاشی برنج ها را به هم زدم و خوردم وقتی دوباره فنجان چایم را پر کردم، متوجه شدم کف کاسه فقط یک آلو باقی مانده است دو آلوی دیگر را ندیدم به یاد نداشتم که هسته ی آلوها را هم بیرون انداخته باشم آنقدر هم با ولع غذا نخورده بودم که آن دو آلو را همراه برنج بلعیده باشم به گلویم دست کشیدم وضعیتی غیرعادی نداشت با اینکه تقریباً آلو خشک های درشتی بودند بعد از غذا کارگری به نام یودا گفت فرمایشات والا حضرت امپراتور در برنامه رادیویی مدتی قبل این بود که بعد از این باید به سختی بجنگیم. در یک لحظه رنگ قدرت بر همه نشست و رئیس و کارکنان خیلی زود از سر میز بلند نشدند. به شکل غیر ای کسی با صدای بلند گفت شای ای بی خود است! در ادامه سرکارگری به نام نکانیشی گفت جمله والا حضرت بسیار واضح بود که دیگر جنگ را ادامه نم من هم مطمئن نیستم اما به هر حال این طوری شنیدم. رئیس کارخانه این را گفت. دو سه نفر دیگر هم گفتند که مطمئنا فرمایشات این گونه بوده است. با این حساب از آن فرمایشات بعد از این باید به سختی به جنگیم استخراج نمی شود. سرانجام همه به این نتیجه رسیدیم که در جنگ شکست خورده ایم. در همین روز، و در برنامه ساعت پنج بعد از ظهر به وضوح فهمیدیم که آن سخنان شکست در جنگ بود. روزهای بعد در نشریات دیدیم که بیانیه خاتمه جنگ والا حضرت امپراتور به این شهر بوده است. دشمن از بمبی جدید و ظالمانه استفاده کرده که همچنان بیگناهان را می‌کشد. وضعیت صدمات و خسارات، در حقیقت قابل برآورد و تخمین نیست به علاوه اگر همینطور جنگ را ادامه بدهیم عاقبت واقعیتی جز استقبال از نابودی بیشتر ملت خودمان نخواهد داشت و ادامه آن باز با هر مرج تمدن انسانی همراه است یاد داشته اضافه شده برگه ها را از دفتر به غذا آوردم و رئیس آنها را مهر کرد به دلیل شکست در جنگ ادامه کارکارخانه های تولید یونیفرم ارتشی دیگر ناممکن می‌نمود. دیگر رفتن یا نرفتن به ایستگاه کوی هم مطرح نبود. وقتی از رئیس کارخانه پرسیدم این برگه ها را چه کار کنم گفت؟ من آنها را در گاف صندوق می گذارم. فقط می‌گذارم. اینطور جواب داد. از سر میز غذاخوری بلند شد و رف. من هم از غذاخوری خارج شدم. برای دوباره دیدن بچه ها از در همیشگی به حیات پشتی رفتم. این بار با احتیاط و کم کردن صدای پاهایم به کانال نزدیک شدم، اما یک قطعه مارماهی هم آنجا نبود. فقط آب زلال جاری بود. اینطور رونویسی یادداشت‌های بمباران اتمی پایان یافت. بهتر بود بعدا آن را بازخانی. و جلدی از کاغذ زخیم برایش درست کند بعد از ظهر روز بعد شگه ماتسو برای دیدن استخر تخمگیری رفت رشد کگوها خیلی خوب بود در گوشه از استخر بزرگ پرورش ماهی که عمق کمتری داشت گیاهان جونسای رشد کرده بودند شاید آقای اتسو یا شیانها را از استخر بنتن در شیرو آورده و کاشته بود میان برک های بیزی شکلی که به سبزی می درخشیدند و اینجا و آنجا روی آب شناور بودند شکوفه‌های های کوچکی به رنگ ارقوانی تیره شکافته بود حالا اگر در به روبرو رنگین کمانی ظاهر شود ای روی خواهد داد اگر نه رنگین کمان سفید که حتی رنگین کمانی پنج رنگ هم باشد بیماری یاسوکو درمان خواهد شد با اینکه میدانست این می امر محال ممکن است اما چشمانش را به سمت کوه گرداند و اینطور نیاکش کرد